او به نام های زیادی معروفه. قهرمان، پاتریارک، پدر ایمان، پدر قوم ها. البته من از ابراهیم صحبت می کنم. مردی که ایمان بزرگ اون چنان قلب خدا رو لمس کرد که ابراهیم رو عادل لقب داد. اما ایمان چیه؟ و ابراهیم چگونه اون رو نشون داد؟ معلم ما با جواب دادم به این سوالات درس امروز رو شروع میکنه. پدر ایمان حالا ما به وسیع ترین بخش کتاب پیدایش می رسیم که از سه شخصیت کتاب مقدس بحث می کنه. ابراهیم، یعقوب و یوسف به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید به بررسی مهمترین کتاب دنیا کتاب مقدس متشکرم و افتخار دارم که شما به کلاس ما حق شدید مدتها قبل سردبیر یک مجله خبری تصمیم گرفت که اگر خبرهایی رو درج کنند که بر زندگی مردم اثر می‌ذاره، مردم مجله بیشتری خواهند خوند اسم اون مجله هنوز هم مردم در خبرها هست. مردم علاقمند به مردم هستند. پس سردبیران مجله خبری احساس کردند که اگر خبرهایی را درج کنند بر حسب اینکه چطور بر زندگی مردم اثر می‌ذاره، مردم مجله اونها رو خواهند خون. خب قبل از اون که مجله های خبری وجود داشته باشند خدا میدونست که مردم به مردم علاقمنده و آوردن مثال های از زندگی مردم راه خوبی برای گفتن حقیقت بود. در کتاب پیدایش خدا خیلی مراقب هست که چه مقدار فضا برای موضوعات مختلف در نظر بگیره. توجه کنید که چه مقدار فضا برای شرح این شخصیت های کتاب مقدسی در نظر گرفته شده. این به خاطر این بود که خدا باز هم چیزی رو شرح بده همونطور که بود و همونطور طور که هست خدا میخواست ما ایمان رو همون گونه که بود و همون گونه که هست بفهمیم بر اساس باب ایمان در عهد جدید عبرانیان باب 11 بدون ایمان غیر ممکن است که بتوان خدا را خوشنود کرد و بدون ایمان نمیتوانید به خدا نزدیک بشید یقیناً خدا میخواد که ما به او نزدیک بشیم و میخواد که او را خوشنود کنیم او میخواد که ما راجب ایمان بدونیم در واقع ما نمیتونیم بدون ایمان از این نجاتی که کتاب مقدس ازش حرف میزنه قدردانی کنیم و یا اون رو بپذیریم. پس ایمان خیلی مهم هست چون کتاب مقدس میگه ما با ایمان نجات یافتیم. از اونجایی که ایمان خیلی مهمه و خدا میخواد که ما ایمان رو درک کنیم، او داستان مردی به نام ابراهیم رو به ما میگه. این یک شخصیت زیبای کتاب مقدسی هست. در عهد جدید به این مرد بیش از سایر شخصیت‌های عهد قدیم اشاره شده هر بار که کتاب مقدس می‌خواد با ما از ایمان حرف بزنه پیش از اون که یک یا دو جمله بگه او میگه ابراهیم اگه می‌خواید ایمان رو درک بکنید عهد جدید به شما میگه که لازم ابراهیم رو بشناسید این مرد شرح ایمان مجسم هست او تجسم نمونه ای از ایمان هست وقتی اولین بار او رو در انتهای باب یازده ملاقات می‌کنیم و در ابتدای باب دوازده اسم او ابرام هست پدر پسران بسیار این مرد 75 ساله است و هیچ پسری نداره با این حال معنی اسم او پدر پسران بسیار است من این حکایت رو راجع به شخصی خوشبین شنیدم آدم خوشبینی که 75 ساله هست بدون فرزنده ازدواج میکنه و خانهای کنار یه مدرسه میسازه این شرحی یه آدم خوشبین هست. وقتی با ابراهیم روبرو میشیم او چنین آدم خوشبینیه او 75 سالشه و هیچ بچه ای نداره اگه او رو بر سر چاغ ملاقات کنید و او خودش رو معرفی کنه و بگه اسم من پدر پسران بسیار هست اگه شما بگید او شما باید بچه های زیادی داشته باشید او میگه نه راستش رو بخواید من اصلا بچه ندارم ولی باور کنید که اگه شما بتونید دانه های شن سواحل دنیا رو بشمارید یا ستارگان آسمان رو میتونید تعداد فرزندان منو هم بشمارید اگه او اینو به شما بگه و احتمالا هم میگه شما به او میگید کی اینو به شما گفته پیرمرد و او به شما میگه خدا اینو به من گفته مدتها بعد وقتی او حدود 90 سالش هست خدا اسم او رو عوض کرده او هنوز هیچ فرزندی نداره اما خدا اسم او رو به ابراهیم عوض میکنه که معنیش هست پدر پسران بسیار پدر قومهای بسیار اگه او رو بر سر چاه ملاقات کنید میگید سلام پدر پسران زیاد او خواهد گفت معذرت میخوام اسم من عوض شده و شما میگید او واقعا الان اسم چیه و او میگه پدر جمع کثیری از پسران بعد شما میگید خوب خدا برکتت بده حتما پسردار شدی و او میگه نه راستش پسری ندارم ولی باور کنید که اگر شما بتونید دانه های شن سواحل دنیا رو بشمارید یا ستارگان آسمان رو میتونید تعداد فرزندان مرا هم بشمارید اون سالها به سالها به این کار ادامه میده یک آیه ای در کتاب پیدایش هست که در باب چهارم رومیان هم نقش شده که در واقع شرح مبسوطی از ابراهیم هست اون آیه میگه ابراهیم به خدا ایمان داشت و خدا اون رو برای او پارسایی شمرد خدا به این پیرمرد نگاه کرد و گفت: من به اون پیرمرد چیزی گفتم و او باور کرد. من اینو دوست دارم. بالاخره من او رو به عنوان مرد عادل حساب می کنم. مرد عادل چیه؟ خدا میگه این چیزی که من کسی رو عادل میشمارم. من به او چیزی گفتم و او به اون باور کرد. به اون دلیل ابراهیم شرح تجسمی از ایمان هست. وقتی یک شخصیت کتاب مقدسی مثل این دارید، داستان بر اساس دو بود گفته شده. اولیش چیزی که شما میتونید بهش بود نگرش خدا به داستان بگید. بود بعدی رو دارید که نگرش انسان به داستان هست. اون مثل دو روی سکه هست. در مورد ابراهیم بود خدایی داستان در مورد ظاهر شدن خدا بر این مرد صحبت میکنه کتاب مقدس میگه بار خدا بر این مرد ظاهر شد یا خدا با او صحبت کرد. به اعتقاد من منظور کتاب مقدس وقتی میگه خدا بر این مرد ظاهر شد چیزی مثل اینه که در پیدایش باب سه وقتی خدا اون سوال رو کرد کی به تو گفت یادتونه که گفتیم شما وقتی خدا صحبت میکنه صدایی نمیشنوید ابریه اونچه که در باب 3 پیدایش هست اینه چه کسی تو را آگاه کرد آیا برای خدا امکان داره که شما را از چیزی آگاه بکنه البته که داره این همون چیزیه که بهش ظهور خدا بر ابراهیم گفته میشه اون هشت بار در این داستان پیش اومده اگر میخواید بود خدایی داستان رو ببینید ظهور خدا بر ابراهیم رو مطالعه کنید ببینید اگر خدا باعث نمیشد که بوت مشتعل بشه توجه مردی به نام موسا جلب نمیشد که برگرده و ببینه چرا این بوده مشتعل شده ما هرگز راجب مردی به نام موسا چیزی نمیشنیدیم خدا همیشه در روابطش با انسان پیش قدم میشه خدا همیشه اولین قدم رو برمیداره تا انسان بیاد و او رو بشناسه. در عهد جدید به ما میگه که هیچ انسانی دنبال خدا نمیگرده خدا دنبال انسان میگرده اگر انسان جوری به نظر میرسه که گویی به دنبال خدا میگرده او فقط به خدایی که در جستجوی او هست پاسخ میده خدا همیشه در روابطش پیشقدم میشه اگه شما میخواهید اون عرصه از روابط رو ببینید ظهور خدا بر ابراهیم رو مطالعه کنید وقتی داستان رو میخونید، سعی کنید بفهمید چرا خدا در مقاطع خاصی در داستان ابراهیم ظاهر شد چرا خدا احساس کرد که در این مرحله ابراهیم به ظهور یا مکاشفه دیگری نیاز داره؟ ظهور خدا بر ابراهیم بود خدایی این رابطه رو به شما نشون میده. بود انسانی رابطه یا واکنش این مرد ابراهیم به خدا که به او ظاهر شده به شکل مذبح‌هایی که ابراهیم ساخته دیده میشه. ابراهیم چهار مذبح ساخت. وقتی داستان ابراهیم رو میخونید سعی کنید بفهمید او با ساختن اون مذبح‌ها داشت به خدا چی میگفت. برای مثال استفان در اعمال رسولان باب هفت به ما میگه مدت ها قبل از این که او تصمیم بگیره سرزمین او رو ترک کنه خدا برو ظاهر شد. خدا داشت به این مرد میگفت از اینجا خارج شو و به بیابان کنان برو. نزد من بیا. ما همیشه دلمون میخواد به یه کشور یا به یه کلیسا و یا به یه سازمان خونده بشیم. چند نفر از ما به خدا فراخونده شدیم؟ این چیزیه که توضیحش سخته این طور نیست فرض کنید که شما شروع کنید به بستن چمدانتون و همسرتون از شما بپرسه کجا داری میری و شما به او بگی دارم نزد خدا میرم آیا با مشکل مواجه نمیشید؟ با مشکل مواجه نمیشید که به مردم توضیح بدید که من فقط از اینجا دارم میرم به بیابون چون خدا میخواد منو ملاقات کنه و نمیدونم که بعد از اون کجا خواهم رفت فقط نزد خدا میرم این کاری بود که خدا از این مرد خواست بکنه مدتا بود که خدا از این مرد خواسته بود که زادگاه و پدر و همه بستگانش رو ترک کنه و این مرد انجام نداده بود. نمیدونم که به چه مدت خدا به شما ظاهر شده، سعی کرده توجهتون رو جلب کنه، سعی کرده شما رو بکشونه و نزد خودش یا به نقشه‌ای بیاره که برای شما در زندگی داشته و شما جوابی ندادید. بعد از مرگ پدرش بود که ابراهیم بالاخره در پاسخ به خدایی که برو ظاهر شده بود به کنعان رفت. او اولین مسبهش رو در بلوتستان موره بنا کرد. کلمه موره به معنی یاد دادن یا جستجو کردن هست. عقیده بر این هست که من میخوام یاد بگیرم و ایمان دارم که خدا به من یاد خواهد داد. مثل اینکه چیزی هست که من باید یاد بگیرم و جایی هست که مقرر هست باید اونجا باشم و ایمان دارم خدا به من خواهد گفت و من میخوام بدونم اونجا کجا هست. به اعتقاد من تمثیلی که اینجا هست بسیار بسیار زیباست. مصمم نبودن. این معنی کلمه موره هست، جایی که اولین مذبحش رو ساخت من به اولین مذبح ابراهیم مذبح پاسخ میگم چون که اون در پاسخ به خدایی که تا مدت‌ها بر ابراهیم ظاهر شده بود ساخته شد وقتی او به خدایی که بر او ظاهر شده بود پاسخ داد خدا او رو در اون مذبح ملاقات کرد در اونجا بر او ظاهر شد و بعد ابراهیم به پیش رفت و مذبح دیگری ساخت مذبح دوم او بین دو مکان ساخته شد بین آی و بیت ایل. در زبان عبری بیت ایل یعنی خانه خدا. ایل کلمه ای برای خدا و بیت کلمه ای به معنی خانه است. در این مرحله خدا خانه ای نداشت. پس معنی این کلمه ای که به نظر میرسه داشته باشه اینه. جایی که خدا هست. جایی که حضور الهی خدا هست. اون بیت ایل هست. بیت ایل در قرب واقع شده و در شرق شهر آی واقع شده و در زبان ابری اون کلمه به معنی چیزی مثل مرگ است یا تباهی. یا بدبختی و نابودی اون یه همچین کلمه یه. کلام خدا میگه گناه موت هست پاداش و عواقبی که در نتیجه گناه عاید میشه بدبختی، افسردگی و ناامیدی هست این چیزیه که کلمه آی عرضه میکنه وقتی در شرق آی به جلو میریم شهر صدوم و اموره واقع شدن ابراهیم دومین مذبحش رو درست بین بیت ایل و آی میسازه اعتقاد من این مزب دوم پاسخ خدا بود به آنچه که ابراهیم در مذبه اول درخواست کرده بود. در مزب اول ابراهیم درخواست کرد مرا بیاموز آنچه را که باید بدانم و هر جا که مقرر است باشم. در مذبح دوم خدا به او پاسخ داد و گفت: ابراهیم مشکل تو اینه که آقای دو دل هستی تو تصمیم نگرفتی کجا میخوای باشی. در کتاب مقدس در بسیاری از جاها به ما گفته شده من ترجیح میدم که تو گرم باشی. اما اگر تو نمیخوای گرم باشی برو جلو و سرد باش نمیخوام ولرم باشی الیشا قوم خدا رو با این سوال به چالش کشید تا کی بین دو عقیده دو پاره خواهی شد اگر یهوه خدا هست پس او را پیروی کن اگر بل خداست او را پیروی کن و در جای دیگه عیسی میگه سعی نکنید دو ارباب را خدمت کنید آقای دو دل نباشید من به این مذبح دوم مذبح پاسخ میگم وقتی مردم با ایمان نزد خدا میان، اول اونا باید پاسخ بدن. این شروع هست. این مهم هست چون که همونطور که چینی ها میگن، سفر هزاران کیلومتری با قدم اول شروع میشه. شما باید پاسخ بدید. اما قدم اول تمام مرحله نیست. ایمان در طول یک سفر هست. اون یک دوره هست. تمامی شخصیت هایی که در کتاب مقدس نقش دارن، اون رو به ما میگن. به گفتگوهای عیسی توجه کنید. عیسی هرگز به کسی اطمینان برای نجات نمیده مگر اینکه قبلا معنی توبه و بازگشت رو برای اونها باز کنه. اونها باید توبه میکردند. اونها باید دوباره فکر میکردند معنی توبه این هست: برگرد و در مسیر مخالف برو. وقتی عیسی مردم رو ملاقات می کرد اونها اغلب در چیزهای گناهآلود بودند. برای اینکه اونها او رو پیروی کنند، باید بازگشت میکردند و خودشون رو از اون چیزها جدا میکردند. به این توبه گفته شده. ابراهیم در اون مذبه دوم تقلا می کرد. وقتی خدا اهمیت توبه رو نشون داد، ابراهیم به جنوب رفت. وقتی ابراهیم به مصر رفت، او در سقوط روحانی بود. او تنها به طور تمثیلی به جنوب رفت، او به جنوب روحانی رفت. او در مصر بود. او خارج از جایی بود که خدا میخواست باشه. اما از مصر بازگشت به نزد مذبه دوم و برای بار دوم نام یهوه رو خواند بعد او مذاکره با برادرزادش لوت داشت وقتی ابراهیم زادگاهش رو ترک کرد به او گفته شد که پدرش رو ترک کنه اما او نتونست این سینکارا بکنه. پدرش مرد و اون انگیزه ای بود که بالاخره سبب شد که او اونجا رو ترک کنه. به او گفته شده بود که همه بستگانش رو ترک کنه. اما او برادرزادش لوت رو با خود آورد. پدر او برادری داشت به نام هرران و هرران پسری داشت به نام لوت وقتی که هرران مرد ابراهیم لوت رو به فرزند گرفت. شاید به این دلیل باشه که ابراهیم این برادرزاده رو خیلی دوست داشت و میتونه به این دلیل باشه که این برادرزاده پاسخ خدا باشه به تمام وعده ای که داده بود. او احتمالا برای خودش توجیح میکرده و میگفته خب منظور خدا شاید این بوده که بالاخره این برادرزاده هست همینجا تو خونه من داره زندگی میکنه شاید او وارثی هست که به واسطه او نسل من خواهد آمد هر دلیلی که داشت ابراهیم نتونست لوت رو ترک کنه. مقرر بود که این کار رو بکنه اما این کار رو نکرد. وقتی با موضوع توبه مواجه شد، او لوت رو به نزدش فراخوند و گفت: لوط ما باید جدا بشیم. از من جدا شو چون که من میخوام خودم رو از تو جدا کنم. کتاب مقدس میگه لوت به سمت شرق رفت، به سمت آی و در صدوم و اموره زندگی کرد. ابراهیم به غرب رفت و سومین مذبحش رو در منطقه‌ای به نام حبرون بنا کرد. باز دوباره من فکر میکنم که این تمثیل بسیار زیباست. مسمم نبودن. هبرون در زبان ابری به معنی صمیمیت هست. وقتی ابراهیم اون مذبح سوم رو بنا کرد بعد از اینکه مذبح توبه رو بنا کرده بود، او به خدا می گفت خدایا می خوام تو رو بشناسم. همه مردان بزرگ کتاب مقدس این فریاد بزرگ رو داشتن که من باید او رو بشناسم. اونها از اعماق قلبشون فریاد برمی‌آوردند که من باید او رو بشناسم. هرچه بیشتر اونها خدا رو میشناختند، بیشتر میخواستند خدا رو بشناسند. این چیزیه که ابراهیم در مذبح سوم میگه. خدایا میخوام تو رو بشناسم. من این مذبح رو مذبح رابطه میگم. ابراهیم این سه مذبح رو در بابهای دوازده و سیزده ساخته. در این دو باب، اول داستان ابراهیم او سه مذبح ساخت. او مذبح دیگه ای نمیسازه تا باب بیست و دو. او وقتی مذبح سوم رو ساخت میگفت؟ بعد از اینکه مذبح سوم رو ساخت چه اتفاقی افتاد چه اتفاقی بین مذبح سوم و مذبح چهارم افتاد وقتی او گفت خدایا یا میخوام تو رو بشناسم فکر میکنم کنم چیزی که خدا داشت به او می این بود ابراهیم اگر میخواهی با من رابطه داشته باشی می خوام که یه چیزی رو بدونی اگه قرار من چیزی باشم باید همه چیز باشم چون که تا منو به عنوان همه چیز نبینی منو به عنوان چیزی هم نمیبینی اینو وقتی من بچه بودم به من گفتند اگه قرار عیسای مسیح چیزی باشه پس باید عیسای مسیح همه چیز باشه با عیسی شوخی نکنید با خدا شوخی نکنید اگه واقعا میخواید خدا رو بشناسید خدا میخواد جایگاه واقعیش رو در زندگی شما داشته باشه کسان دیگری در زندگی ابراهیم بودن برای مثال لوط لوط تصویری از اشخاصیه که ما در زندگیمون قرار میدیم و خدا نمیخوادونو اونجا باشن قم و قصه و اندوه زیادی پیش میاد به خاطر اینکه ما کسی رو در زندگیمون قرار میدیم در صورتی که خدا هرگز اونارو در زندگی ما نمیخواست این چیزی که لود ترسیم میکنه در پیدایش باب شانزده با پیشنهاد زنش سارا ابراهیم صاحب پسری شد از کنیز مصری زنش به نظر میرسه او هم درست مثل آدم به زنش گوش کرد ما دوچار مشکلات زیادی شدیم وقتی آدم به حرف زنش گوش کرد و وقتی ابراهیم هم به حرف زنش گوش کرد و صاحب فرزندی از کنیز مصری و حاجر شد، باز هم دچار مشکلات زیادی شدیم. اون بچه اسماییل بود. اگه ابراهیم به حرف زنش گوش نکرده بود، این همه بحرانهای خاورمیانه امروزی پیش نمی اومد. اما او به زنش گوش کرد و صاحب این پسر یعنی اسماییل شد. اسماعیل پدر عرب ها شد، حالا شما عرب و یهودی ها رو در سرزمین مقدس می بینید. این مشکل امروزی ما هم هست. اگر ابراهیم پدر اسماسیل نمیشد هیچ عربی هم وجود نمی داشت. فکر می کنم اسماعیل مثالی از چیزی است. خوب بزرگترین دشمن بهترین هست. بزرگترین دشمن بهترین های خدا در زندگی شما یک چیز خوب هست. شیطان بر اینکه شما را از مسیر اراده خدا برای زندگیتون دور کنه به شما نمیگه برو اون بیرون و یک بانک بزن. اگه خدا میخواد که شما یک میسیونر پزشکی باشید شیطان شما را وسوسه نمیکنه که یک سارق بشید و برید به بانک دستبرد بزنید. او میگه میدونید ما اینجا به پزشکان خوبی نیاز داریم. چرا اینجا توی شهر خودت توی این شهر بزرگ و زیبا کار پزشکی نمیکنی؟ این میتونه چیز خوبی باشه. یک پزشک البته که اون چیز خوبیه. اما اگه خدا میخواد که یک پزشک خادم در یک منطقه دور افتاده باشید اون موقع اون چیز خوب بزرگترین دشمن بهترین چیزه این طرز کار چیتانه این استراتژی او هست با عرضه کردن چیزهای خوب ما رو از بهترینهای خدا دور نگه میداره نه با عرضه کردن چیزی وحشتناک اسمایل تصویری از اون هست تصویری از اشخاصی در زندگی ما که خوب هستند اما بهترین نیستن در پیدایش باب بهفته وقتی اسمایل متولد شد خدا دوباره بر ابراهیم ظاهر شد چرا؟ چرا او در این باره بر ابراهیم ظاهر شد؟ خدا به او گفت پیش روی من بخرام و کامل شو. چیزی که او داشت میگفت این بود. ابراهیم نقشه من اینه که تو پدر فرزندی از سارا باشی، نه آجر. به اعتقاد من سارا مشکلات دیگری رو در زندگی ابراهیم پیش آورد. مذبح سوم مذبح روابط با روابط عمودی و روابط افقی سر و کار داره. اونها جدایی ناپذیرند برای اینکه خدا رو بشناسه خدا باید جایگاه راستین خودش رو در روابط ابراهیم میداشت. خدا مجبور شد که با ابراهیم در مورد لوط حرف بزنه و لوت رو از زندگی او بیرون بیاره او باید اسماعیل رو هم از زندگی او بیرون می آورد بالاخره بر ابراهیم ظاهر شد و گفت اسماعیل رو بیرون کن یکی یکی خدا این اشخاصی رو که جایگاه اول رو در زندگی ابراهیم اشغال کرده بودند ریشهکن میکنه سارا هم مشکل متفاوتی بود. سارا تصویری از اشخاصی که خدا در زندگی ما قرار میده و ما نمیخواییم اونها رو تشخیص بدیم. چند نفر مرد از زنشون قدردانی دانی میکنن، چند نفر زن از شوهرشون قدردانی دانی میکنن، چند نفر مرد تمام مدت فکر میکنن که او اگه من یه زن بهتری داشتم یا اگه فلان شخص زن من بود، اون موقع واقعا میتونستم روحانی باشم. یا چند نفر مرد فکر میکنن اگه با این زن عروسی نکرده بودم، واقعا میتونستم مرد خداشناس و مقدسی باشم. و یا زنانی که میگن اگه من با بیلیگراهام ازدواج کرده بودم اونا هرگز نمیفهمن شوهر اونها مردیه که خدا به اونها داده. همسر شما زنیه که خدا به شما داده. نقشه خدا برای شما شامل همسر شما هم میشه. خدا دو بار به ابراهیم در مورد سارا ظاهر شده بود. او به ابراهیم ظاهر شد و گفت ابراهیم نسل تو از سارا ادامه پیدا خواهد کرد. من اسم او را عوض خواهم کرد. من اسم او را از سارا به ساره تغییر خواهم داد. معنی سارا ستیزجو هست. شخص ستیزجو کسیه که همواره با چیزی مخالفه. هر چیزی که شما ارزه کنید، اونها مخالفم. اونها اغلب مناظره میکنند یا مخالفت. اونها اغلب جر و بحث می‌کنند یا مخالفند. سلیمان گفت زن ستیزجو مانند قطره مداوم در یک روز بارانی هست. فقط میچکه و میچکه و میچکه سارا ستیزه جو بود و ابراهیم مدت‌های طولانی با او زندگی کرد. خدا بر او ظاهر شد و گفت نام او را به شاه دخت عوض خواهم کرد. او مادر قوم‌های بسیار خواهد شد همانطور که تو پدر قوم‌های بسیار خواهی بود و شاهان از او به دنیا خواهند آمد. ابراهیم به او افتاد و خندید قهقه میزد. او باید باور می کرد که نقشه خدا می شامل او هم بشه و باید باور میکرد که خدا قادر هر کاری توسط او بکنه اما نمیتونست باور کنه که این نقشه میتونه شامل سارا هم بشه توجه کنید او چند تا نقشه جایگزیم پیشنهاد کرد لوت یک مرد جایگزین بود نیازی به سارا نبود اگر قرار بود که لوت وارث بشه در باب 15 او به خدمتکار اشاره میکنه که در خانه او زندگی میکنه و تصور میکنه که اون خدمتکار وارث او خواهد شد بعد البته اسماعیل او هر بار سارا رو نادیده میگیرم ما خدا به او تاکید میکنه که این به وسیله سارا خواهد بود وقتی او این اطلاعات رو با سارا در میون گذاشت سارا هم خندید بالاخره پسری از ابراهیم و سارا متولد شد وقتی ابراهیم 100 ساله بود و سارا 90 ساله خدا به اونها گفت که بچه رو اسحاق نام بذارم که در زبان ابری به معنای خندان است خدا هرگز نمیخواست که این قهرمانان ایمان فراموش کنند که وقتی خدا به اونها گفت که چه کار میخواد بکنه، به او خندیدند. بهش فکر کنید هر بار که اسحاق رو برای شام صدا میکردند، باید صدا میکردند خندان. بیا شامتو بخور. هر بار که اسحاق را صدا میکردند، به خاطر میآوردند که به خدا خندیده بودند. و ابراهیم هم که قهرمان ایمان هست، خندیده بود. هر بار که این زوج و به نام صدا میکردند، خدا به اونها یادآوری میکرد که به او خندیده بودند و اینها قهرمانان ایمان بودند. سرانجام ابراهیم مذبح چهارم رو بنا کرد این مهمترین مذبح هاست او این مذبه رو بر کوهی در موریا بنا کرد معنی موریا این هست یهوه مهیا خواهد کرد تا این زمان ابراهیم مکان رو انتخاب کرده بود او به قربانی نام داده بود اما این مذبح چهارم متفاوت بود خدا مکان رو انتخاب کرد خدا اسم قربانی رو انتخاب کرد میدونید که خدا خواست که در مذبه چهارم چی رو قربانی کنه اسحاق رو، او فرزندش رو خواست فرزندی که نه تنها پسر سالهای پیری ابراهیم و ساره بود بلکه نتیجه 25 سال ایمان بود خدا گفت من او رو میخوام. پس ابراهیم به کوه موریا رفت و کاملا مصمم بود که اسحاق رو قربانی کنه حالا به این واقعیت نچسبید که او میخواست یک انسان رو قربانی کنه از پایان داستان پیدا هست که خدا قصد نداشت که این اتفاق بیفته در کوه موریا ابراهیم اسحاق رو قربانی نکرد ابراهیم ابراهیم رو قربانی کرد من به مذبح چهارم مذبح تسلیم میگم یا مذبح واقعیت جایی که او میفهمه نمیتونه و همه رو به خدا تسلیم میکنه شما داستان رو میدونید او میخواست که اسحاق رو به عنوان قربانی تقدیم کنه قبل از اینکه او و اسحاق به بالای کوه برند، او به خادمینش گفت شما اینجا نزد حیوانات بمانید من و پسرم بالا می رویم و پرستش میکنیم و نزد شما باز خواهیم گشت. ابراهیم هرگز شک نکرد که هر دوی اونها باز خواهند گشت. کتاب عبرانیان در باب ایمان میگه ابراهیم ایمان داشت که اگر ابراهیم اسحاق را میکشت خدا او را از مردگان برمیخیزانید. ابراهیم ایمان زیادی داشت و اینطور شد که ابراهیم مجبور نشد پسرش را بکشد. او قوچی را قربانی کرد که توسط خدا آماده شد. و در بوته گیر افتاد او آن محل را یهو و یران امید که معنیش در ابری اینه که خدا فراهم خواهد کرد دوباره در اینجا تمثیل بسیار زیبایی هست باید تصمیم گرفته میشد چیزی که او می گه اینه وقتی اجازه میدید که خدا نام کوه رو تعیین کنه وقتی اجازه میدید که خدا قربانی رو تعیین کنه این زمانیه که شما به خدا ثابت می کنید و زمانیه که خدا به شما ثابت میکنه شما چطور ایمانتون رو ثابت می کنید؟ در قله کوه سرسپردگی کامل، جایی که شما ایمانتون رو به خدا ثابت می کنید، خدا چطور به مردان و زنان ایمان ثابت میکنه؟ با رسوندن اونها به تسلیم کامل. شما میتونید تونید اینو مثل مثلث وفاداری مسیحی بنامید. هر چیزی، هر جا، هر زمان. وقتی که شما به باشگاه مثلث وفاداری مسیحی ملحق بشید، به خدا میگید خدایا، من تسلیم هستم. خدا یا من هر کاری خواهم کرد، هر جایی خواهم کرد، هر زمان خواهم کرد. شاید شما بتونید دوتای دیگه هم به اون اضافه کنید، هر کسی، هر روشی. فقط مرتبا به خدا بگید، خدا یا هیچ کاری نیست که من نخوام برای تو بکنم. دوبار در باب 22 پیدایش، وقتی که ابراهیم مایل که اسحاق رو قربانی بکنه، خدا گفت لازم نیست این کار رو بکنی. چون که الان دانستم که تو چیزی را از من دریغ کنی حتی گانه پسرت رو پیام کتاب مقدس میتونه در دو کلمه خلاصه بشه اون دو تا کلمه اینها هستند اول خدا حالا اون آسون نیست اما پیچیده هم نیست به اعتقاد من الهیدانها اونو پیچیده کردن بر اینکه اونها نمیخوان خدا رو اول قرار بدن اون پیچیده نیست فقط خیلی مشکله. در واقع عهد جدید به ما میگه که هیچ کس نمیتونه بگه که عیسی خداوند است و یا خدا اول است مگر اینکه روح خدا اون رو برای او آشکار کرده باشه. هیچ کس نمیتونه بگه که ایسا خداونده جز به وسیله روح القدس. قرار دادن خدا در اول نه تنها مشکله بلکه اگر تجربیات روحانی نداشته باشید امکان نداره. اگه تولد دوباره دارید اون موقع ملکوت خدا رو خواهید دید و میفهمید که خدا شاه است. شما وارد اون رابطه با او خواهید شد در جایگاهی که او هست در واقع شاه شما و رب و خداوند شما در جایگاه اول هست جایی که او همه چیز هست او یک چیز نیست وقتی شما دوباره متولد میشید ملکوت مسیح رو میبینید و وارد اون میشید این چیزیه که در کوه موریا برای ابراهیم اتفاق افتاد وقتی که مذبه چهار رو بنا کرد خب حالا شما چهار مزبحه ابراهیم رو دارید مزبحه پاسخ، مزبحه توبه، مزبه رابطه و مزبحه واقعیت شما چند تا مزبحه ساخته اید تا حالا مزبحه پاسخ رو ساخته اید که بگید خداوند به من یاد بده آیا مزبحه پاسخ رو ساخته اید آیا مزبحه توبه رو ساخته اید آیا تا به حال از گذشته خود پاک شده اید و خودتون رو از گذشته جدا کرده اید آیا مزبحه رابطه رو ساختید و بالاخره بالاتر از همه اونها آیا مذبح واقعیت برای تسلیم کامل رو ساختید؟ آیا تا به حال دیدید که اگر خدا چیزی هست او همه چیزه؟ چون اگر خدا همه چیز در زندگی شما نباشه اون وقت در واقع خدا چیزی نیست. این معنی ساختن اون چهار مزبه هست. این بخشی از چیزی که ما میتونیم راجع به ایمان از زندگی ابراهیم مطالعه کنیم. ظاهر شدن خدا بر او و مذبح هایی که او در پاسخ به خداوند ساخته که بر او ظاهر شده بود این بخشی از چیزی که ما میتونیم راجع به ایمان از زندگی ابراهیم مطالعه کنیم ظاهر شدن خدا بر او و مذبح هایی که او در پاسخ به خداوند ساخت که بر او ظاهر شده بود پاسخ توبه، رابطه و تسلیم مانند ابراهیم شاید برای شما زمان زیادی طول بکشه شاید بیست و پنج سال طول بکشه که بالاخره در سفر روحانی تسلیم کاملتون قدم بذارین. اما زیاد نگرانی نباشین. مهمترین چیز اینه شما به راه ادامه بدین. در سفر ایمانیتون به جلو حرکت کنین ایمان دارم که این درس ها به شما کمک خواهد کرد که در ایمانتون رشد کنین ایمان دارم که جلسه بعد شما به ما ملحق خواهید شد وقتی که معلم ما در ادامه بررسی کتاب مقدس به ما درس تازه میده. دوستان متشکرم برای اینکه دانشجو وفاداری هستین. عزیزان، باشد که خدا به شما برکت بدهد در سفر ایمانیتان.